Thank you. اصل هشتم اما زندگی همیشه غمانگیز نیست ما کار خود را حتی پیش از انکه شروع کنیم از دست داده بودیم اما در همین زمان چیزی وارد زندگی ما شد که این شکست را جبران کرد و بر همه دوران کودکی و جوانی ما اثر مهرامیزی گذاشت پولت گدارد او پنجمین زن ای بود که به کمک تربیت سهراسای پدرم در عرض چند سال به شهرت و مقام رسیده بود. ادنا پورویانس، جیورجیاهیل، مرنا کنیدی، ویرجینیا چریل همه با افسون تربیت پدرم درخشیدن آغاز کرده بودند. اما پولت تنها کسی بود که بعد از ترک پدرم نیز همچنان مشهور ماند. بابا اولین بار در یک مهمانی گردش تفریحی با قایق که میزبان آن جوزف شنگ تیه فیلم بود او را دید. او دختر آوازخان دستهای بود که با حال قرار داد داشت. در این حال او کومیدی های کوچکی بازدی می کرد تا برای ظاهر شدن در جوره دوربین تجربه رو پدرم یکی از سرشناسترین و محبوب ترین چهره های بود. موقعی که به پولت برخورد، شایع بود که پدرم با ماریون دیویس سر و سری دارد و علاقه او به ماریون بیش از یک علاقه گذرا و ناپایدار است. پدرم زیاد به خانه ساحلی ماریون به مهمانی میرفت. هوشیاری و نکته سنجی وی پدرم را سرگرم می کرد و علاوه بر این، شجاعت، روحیه مستقل و سخاوت او مورد تحسین پدرم بود. اگرچه ماریون دیویس همه این خصایص را داشت، یک چیز نداشت که در نظر پدرم مهمتر از همه بود. او احتیاجی به وجود پدرم نداشت. در همان زمان او در عالم سینما فردی موفق بود. اما پولت گدارد از طرف دیگر هنوز ناشناس بود. از دوران کودکی زندگیش سخت بود. پدر و مادرش هنوز موقعی که او کودک بود از هم جدا شده بودند مادرش ناچار بود کار کند تا نان هر دوشان را در بیاورد در چهارده سالگی در اداد سنمهای زیکفلد در آمد و از آن پس نانآور خانواده شد در شانزده سالگی با اوگارد جیمز ازدواج کرد و در سال 1931 در رنو از او طلاق گرفت پدرم بعدها می گفت که در سال 1932 که با پدرم آشنا شد بیست و یک ساله بوده است. او به نظر پدرم فردی شاد آمد که هرگز خنده از لبانش دور نمیشد. پدرم احساسی شبیه به الهام در افراد داشت. او آن خسائل داخلی را که در نهاد شخصیت ها بود تشخیص میداد. او فهمید که پولت از آواز عادی نیست. دانست که او دارای استقلال روحی و شجاعت است و جرأت آن را دارد که در برابر زندگی در برابر ناملایمات از خود دفاع کند پولت همه آن خسائلی را که برای تیپ دختر بچه مانند قهرمان فیلم آینده پدرم عصر جدید لازم بود در خود داشت پدرم در آن موقع داشت سناریوی فیلم را تحیم کرد داستان فیلم راجیور اصر ماشین بود علت تهیه این فیلم بحران اقتصادی بود که هنگام بازگشت پدرم در آمریکا شروع شده بود پدرم میدید در سرزمینی که نعمت در آن فراوان است میلیون‌ها نفر به علت فراوانی نعمت به بیکاری افتادهاند. او هنوز خطوط کلی سیمای قهرمان زن این فیلم را رسم کرده بود و پیش از آنکه شکل مشخصی به او بدهد آدمی را که به درد که این نقش میخورد، پیدا کرده بود. بیشتر موفقیت پدرم در کارگردانی زنان و ای که انتخاب میکرد، در آن بود که با در نظر داشتن خصایل آنها نقش آنها را در سناریو معین میکرد و سپس سناریو را می‌نوشت. تقریباً بلا فاصله بعد از ملاقات پدرم با پولت، دختر فیلم اصر جدید در مخیله پدرم به شکل موجودی واقعی درآمد. و شکل مشخص گرفت در همین موقع قرارداد پولت را با حال بازخرید کرد و او را کاملا زیر بال خود گرفت پدرم مربی او شد پدرم در اعماق روح خود معلم است و آموختن چیزی به دیگران او را راضی و خوشنود می کند او پولت را شاگردی شایسته یافت کتابهایی را که پدرم پیشنهاد میکرد به اضافه کتاب دیگر میخواند. زیرا او هم مانند پدرم شیفته آموختن بود. او اولین همسر پدرم بود که با وجود جوانی از لحاظ فکری بالغ بود. او می با پدرم در سطح معلومات پدرم حرف بزند. این نشینی آنها را مبوطتر و نزدیک تر میکرد. پولت زیر نظر معلمان رقص و آواز که پدرم برای او تهیه کرده بود سخت کار میکرد و همه راهنمایی های هنری پدرم را می میکرد. پولت حتی در انتخاب لباسهایش راه های پدرم را میپذیرفت. اما مهمتر از همه اینها برای پولت آن بود که با وجود گمنامیش پدرم او را همه جا همراه خود میبرد و منحسرن با او قرار ملاقات میگذاشت. روزنامه های سراسر دنیا از این جریان مطلب گیر آوردند از روز اول آشنایی ازدواج غریب الوقوع پولت را با پدرم پیش بینی موقعی که پدرم هنگام سفر پولت به نیویورک در پاییز سال 1932 در فرودگاه را گوسید زمینه برای بحث و صحبت ها شکار ایجاد شد این شایعات در بهار 1932 زیاد شد در تابستان یک روزنامه فرانسوی با یک خبر منتشر نشده منتشر شد که بابا و پولت روی دریا ازدواج کردند وقتی بابا قایقش پانسه را خرید و شروع به تغییر و تعمیران کرد روزنامه ها نوشتند که این قایق ماه اصل است در آفرید 1934 شایعات به صورت یک خبر موسق درآمد که پدرم بر روی قایق پاناسه. به وسیلی ناخدا دیواندرسون قایقبان ازدواج کردند و بعد از آن پدرم به دلایلی که فقط خودش و پولت می‌دانند، پولی به ناخدا داده است تا صفحه مربوط به این ازدواج را از دفتر حوادث کشتی بکند. در سراسر تابستان این داستان جاذب با تغییراتی تکرار شد. در پاییز سال سی و وقتی پولت برای سر به سر گذاشتن با روزنامه‌نگاران، نوار الماس نشان ازدواج را به لباس خود آویخت، داستان کهن با رونق تازهی تکرار شد. حالا داستان چنین نقل می‌شد که پدرم به نام اسپنسر با پولت به نام خانم اوگارد جیمز در لندن پروانه ازدواج گرفته است. در فوریه سال 1935 روزنامه نگاران این شایعه را برملا کردند که پدرم شخصا در یک مهمانی اعتراف کرده است که سال گذشته با پولت مخفیانه ازدواج کرده است. در نوامبر سال 1936 ادعای باز شایعه پردازی کردند. از جمله راندولف چرچیل با ابهت تمامی گفت: من اجازه ندارم مستقیما از قول آقای چاپلین چیزی نقل کنم. اما سری میتوانم توانم بگویم که آنها ازدواج کردند. آنها بیش از یک سال است که ازدواج کردند. پدرم و پولت به همه این شایعات با سکوت آمیزی جواب میدادند و خود این روش سبب میشد که این شایعات اوج بگیرد. من گمان میکنم که پدرم با شوخ تب یه دنکی شد وارش از سر وس که او و پولت ایجاد کرده بودند لذت میبرد. شاید به این نتیجه رسیده بود که حالا که ناچار است در این دنیای پر از شایعه زندگی کند چه بهتر که خودش هم نمکی به آن بیفزاید اما درباره پلت باید بگویم که او هم ناغلا بود ولی از این ناقلایی هدفی داشت او یک بار به من گفت اگر شما شایعه‌ای را نتکسیب کنید و نتایید آن شایعه همچنان ادامه خواهد یافت در همان لحظه که شما انت را تایید یا رد کنید شاگه از بین می رود و من احمق لیستن که چون این کاری بکنم. پولت گمنام و پدرم مشهور بود. تا زمانی که نام او با نام پدرم همراه بود، می توانست مطمئن باشد که در روزنامه ها مرتب از او اسم برده خواهد شد. این شهرت با عرضشی برای او فراهم می کرد. اولین روزی را که من و سیدنی با پولت ملاقات کردیم، به یاد می آورم. مثل اینکه دیروز بود همه چیزش یاد ماست اما در واقع پیش از ربع قرن پیش بود پدرم او را به خانه آورد که ما تماماً در آن زندگی می‌کردیم او میخواست پلیس را به ما معرفی کند و ما را هم برای گردش آسمان ببرد پدرم از اتومبیل بیرون پرید جورو در عقب اتومبیل آمد آن را باز کرد و به یک خانم زیبای مونوه روی کمک کرد از اتومبیل بیرون بیاید من و سیدنی که پهلوی هم ایستاده بودیم مثل سائق زده ها فقط به او خیره شدیم موی درخشان و رنگ پریدهی خانوم دور صورت کشیده او را که به شکل قلب بود و چشمان زاغ در آن می‌درخشید گرفته بود او به نزد من و آمد و پدرم ما را به او معرفی کرد اینها پسران من هستند، چارلز جونیور و سیدنی بعد رو به ما کرد و گفت بچه ها این پلت گدارد است حالا شما به این خانم قشنگ چه می گوید؟ ما سرمان را بلند کردیم و به آن صورت مهر را لبخنده توت آمیز او نگاه کردیم ما در همان لحظه دل از دست دادیم و در تمام دوران طلای کودکی خود نتوانستیم آن را باز پولت پلت: میدانی برای ما چه بودی؟ تو برای ما مثل مادر خواهر و دوست همه با هم بودی تو تلسم خلقی و اندوه پدر ما را شکستی و خامه بزرگ فراس تپه به خانه واقعی تبدیل کردی ما تو را ترین مخلوق جهان میدانستیم و حالا که من به گذشته مینگرم احساس میکنم ما هم برای تو مفهومی داشتیم ما احتیاجی را که در زندگی تو بود اشتام کردیم